مصنوی معنوی مولوی برنامه هفتاد خیال بدندیشیدن قاصر فهمان پیشهزان که این قصه تا مخلص رسد دود گنده آمد از اهل حسد من نمیرنجم از این لیک این لگد خاطر ساده دلی را پی کند. خوش بیان کرد آن حکیم غزنوی، بهر محجوبان مثال معنوی، که ز قرآن گر نبیند غیر قال، این عجب نبود ز اصحاب زلال، کس شعای آفتاب پرز نور غیر گرمی می نیابد چشم کور خربت ناگاه از خرخانه سر برون آورد چون تا آنه کین سخن پست است یعنی مصنوی قصه پیغمبر است و پیروی نیست ذکر بحث و اسرار بلند که دوانند اولیا آنسو سمند از مقامات تبتل تا فنا پایه پایه تا ملاقات خدا شرح و حد هر مقام و منزل که بپر زو برپرد صاحب دلی. چون کتاب الله بی آمد هم بران اینچونین زدند آن کافران. که اساتیر است و افثانه نجند، نیست تعمیقی و تحقیق بلند، کودکان خورد فهمش می کنند. نیست جز امر پسند و ناپسند ذکر یوسف، ذکر زلف پرخمش ذکر یعقوب و زلیخاب و غمش ظاهر است و هر کس پی می برد کو که گم شود در دروی خرد گفت اگر آسان نماید این به تو این چونین آسان یکی سوره بگو جنتان و انستان و اهل کار گو یکی آیت از این آسان بیار تفسیر این خبر مصطفی علیه السلام که ذهر و ذَهْرٌ وَبَطْنٌ بتنه بَطْنٌ, بطن الَا سَبْعَتِ عَبْتُنِن حرف قرآن را بدان که ظاهری است زیر ظاهر باطن بس قاهری است زیر آن باطن یکی بتن سوم که درو گردد خردها جمله گم بتن چهارم از نوبی خود کس ندید جز خدای بی نظیری بی ندید تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین دیو آدم را نبیند جز که تین ظاهر قرآن چو شخص آدمی است که نقوشش ظاهر و جانش خفی است. مرد را صد سال امو خال او یک سر موی نبیند حال او. بیان آنکه رفتن انبیا و اولیا علیه السلام به کوها و غارها جهت پنهان کردن خیش نیست. آنکه گویند اولیا در کوه تا ز چشم مردمان پنهان شوند. پیش خلق ایشان فراز صد کوهند. گام خود بر چرخ هفتم مینهند پس چرا پنهان شود؟ که جو بود؟ کو ز صد در و کوه زانسو بود؟ حاجتش نبود؟ به سوی کوه گریخت کسپهش کره فلک صد نال ریخت چرخ گردید و ندید او گرد جان تعذیت جامع بپوشید آسمان گر به ظاهر آن پری پنهان بود آدمی پنهانتر از پریان بود نزد عاقل زان پری که مزمر است آدمی صد بار خود پنهانتر است آدمی نزدیک عاقل چون خفی است چون بود آدم که در غیب او صفی است تشبیه صورت اولیا و صورت کلام اولیا به صورت عصای موسی و صورت افسون عیسی، علیه السلام. آدمی همچون عصای موسی است آدمی همچون فسون عیسی است در کف حق بهره داد و بهر زین قلب مؤمن هست بین اسبه عین ظاهرش چوبی ولیکن پیش او کاون یک لقمه چو بکشاید گلو تو مبین زفسون عیسی حرف و سوت آن ببین که از گریزان گشت موت تو مبین زفسونشان لهجات پست آن نگر که مرده و نشست تو مبین مرآنعصا را سهل یافت آن ببین که بهر خزرارا را شکافت، تو ز دوری دیده چتر سیاه، یک قدم فا پیش نه بنگر سپاه. تو ز دوری می نبینی جز که گرد، اندکی پیشا ببین در گرد مرد. دیده ها را گرد او روشن کند، کوه را مردی او برکند. چون بر موسی از اقصای دشت کوه تور از مقدمش رقاس گشت تفسیر یا جبال و اویبی او محو و تیر روی داوود از فرش تابان شده کوها اندر پیش نالان شده کوه با داوود گشته هم رهه. هر دو مطرب ماست در عشق شهه یا جبال و اوویبی امر آمده هر دو هم آواز و هم پرده شده گفت داوودا تو هجرت دیدی، ای بحر من از همدمان ببریدی. ای. ای غریب فرد بیمونست شده آتش شوق از دلت شعله زده متربان خواهی و قوال و ندیم کوه را پیشت آرد آن قدیم. مطرب با قوال و سرنایی کند. کوه با پیشت باد پیمایی کند. تا بدانی ناله چون کوه را رواست، بی لب و دندان ولی را ناله هاست. نغمه اجزای آن صافی جسد. هر دم در گوش حسش میرسد. همنشینان هم نشینان نشنوند او بشنود. ای خونک جان کو بغیبش بگرود. بنگرد در نفس خود، صد گفت همنشین او نبرده هیچ بو. صد سؤال و صد جواب اندر دلت، از لا مکان تا منزلات بشنوی تو نشنود زن گوش ها. گر به که تو آرد گوش را گیرم ای کار خود تو آن را نشنوی چون مثالش دیده چون نگروی جواب تان زننده در مصنوی از قصور فهم خود. ای سگ تا این تو او او می کنی تعن قرآن را برون شو می کنی این نه آن است کزوه جان بری یاز پنجه قهر او ایمان بری تا قیامت می زند قرآن ندا ای گروه جهل را گشته فدا که مرا افسانه می پنداشتید تخم تعن و کافری می کاشتید خود بدیدید آن که تعنه می زدید. که شما فانی و افسانه بودید من کلام حقم و قایم بذادم قوت جان جان و یاقوت زکات نور خورشیدم فتاده بر شما لیک از خورشید ناگشته جدا نک منم ینبوع آن آب حیات تا رهانم آشقان را از ممات گر گند آزتان ننگیختی جرعهی برگورتان حق ریختی نه بگیرم گفت و پند آن حکیم دل نگردانم به هر تان سقیم مثل زدن در رمیدن کره اسب از آب خوردن به سبب شخولیدن سایسان. که فرموده است او اندر خطاب کره و مادر همه خوردند آب می شخولیدند هر دم آن نفر بهر اسبان که هلا هین آب خر آن شخولیدن به کره میرسید سر همه برداشت واس خورد میرمید مادرش پرسید که کورا چرا میرمی هر ساعت زین استقا گفت کورا می شخولند این گروه ز اتفاق بانگشان دارم شکوه پس دلم میلرزد از جا میرود ز اتفاق نعره خوفم میرسد. گفت مادر، تا جهان بودست از این، کار افزایان بدند اندر زمین. هین تو کار خیش کن ای ارج زود کشان ریش خود برمیکنند، وقت تنگ و میرود آب فراخ، پیش از آن که از حجر گردی شاخ شاخ. شهرک آریز است پر آب حیات، آب کش تا بردمد از تو نباد. آب خزر از جوی نطق اولیا می خوریم ای تشنه غافل بیا. گر نبینی آب کورانه بفن سوی جو آور سبو در جوی زن چون شنیدی کن در این جو آب هست کور را تقلید باید کار بست جو فرو بر مشک آب اندیش را تا گران بینی تو مشک خیش را چون گران دیدی شبی تو مستدل راست از تقلید خشک آنگاه دل گر نبیند کور آب جو آیان لیک داند چون سبو بیند گران کز جو در سبو آبه برفت کین سبک بود و گران شد زاب و زفت زان که هر باد مرا در می ربود باد می نر بایدم سقلم فزود مر سفیهان را رو هر هوا زان که نبود گرانی قوا کشتیه بی لنگر آمد مرد که زباد کج نیابد او هزار لنگر اقل است آقل را امان لنگر در یوزه کن از آقلان او مددهای خرد، چون در ربود، از خزینه در آن دریای جود، زینچونین امداد دل پرفن شود، جهت از دل چشم هم روشن شود، زان که نور از دل بر این دیده نشست، تا چو دل شد دیده تو آتل است. دل چو بر انوار اقلی نیزد، زان نصیب هم بدو دیده دهد. پس بدان کاب مبارک زاسمان وحی دلها باشد و صدق بیان. ما چو آن کره هم آب جو خوریم، سوی آن وسواس ستا این ننگریم. پیروه پیغمبرانی ره سپر. تانه خلقان همه باد شمر. آن خداوندان که ره تی کردند، گوش فابانگ سگان کی کردند، بقیه زکر آن مهمان مسجد مهمانکش بازگو کان پاک باز شیر مرد اندران مسجد چه بنمودش چه کرد خفت در مسجد را خواب کو مرد غرقه گشته چون خسبد جو خواب مرغ و ماهیان باشد همه آشقان را زیر غرقاب غمی غمه نیم شب آواز با حول رسید کایم آیم بر سرت ای مستفید پنج کرت این چونین آواز سخت می رسید و دل همه شد لخت لخت افصیر آیت و اجلب علیهم به خیلک و رجلک تو چو عزم دین کنی با اجتهاد دیو بانگت برزند اندر نهاد که مر او زنسو ای غوی که اسیر رنج و درویشی شوی بی نوا گردی زیاران وابوری خار گردی و پشیمانی خوری تو زبیم بانگ آن دیو لعین و در زلالت از یقین که حالا فردا و پس فردا مراست راه دین پویم که محلت پیش ماست مرگ بینی باز کو از چپ و راست می کشد همسایه را تا بانگ خواست باز از دین کنی از بیم جان مرد سازی خیشتن را یک زمان از بربندی از علم و حکم که من از خوف نیارم پای کم باز بانگ برزند بر تو مکر که بترسو بازگرد از تیغ فقر باز بگریزی ز راه روشنی آن صلاح علم و فن را بفگنی. سالها او را به با بانگ بنده در چونین ظلمت نمد افگنده ای. حیبت بانگ شیاطین خلق را بند کردست و گرفته حلق را. تا چنان نومی چود، جانشان زنور که روان کافران زهل قبور این شکوه بانگ آن ملعون بود حیبت بانگ خدایی چون بود حیبت باز است بر کبک نجیب مرمگس را نیست زان حیبت نصیب زان که نبود باز سیاده مگس انکبوتان می مگس گیرند و بس انکبوت دیو بر تو زباب توز و کر رو فردارد نبر کپک و اقاب بانگ دیوان بر گلبان اشقیاست هاست، بانگ سلطان پاسبان اولیاست تا تانه بدین دو بانگ دور، قطره از بحر خوش با بحر شور،